سی هو الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد ديننا ورسولنا. 3 رابعه ال رابعه چون الهی ها نایفایل مضافت بوده ازاق الهی هست اون الهی ها نایفایل بوده دیگه نگفته ام مضافتو الهی دیگه نمیسه مئسورون به مئسورون به هم مئسورون به هم مئسورون به یادتونه دیگه این یک شکل پیدا کرد. رضا گفته المزاف و الهی ها یعنی الجملت و المزاف و الهی ها نه این که الجملت و المزاف و اینطور خب جمله مزاف و جمله ای که مزاف و باقی میشه محلش چیه؟ محلش جرد چون کل مزاف و الهی این دیگه واضح بوده نگفته و تقعه بعد از ظروف زمان میگه واقع میشه این جمله بعد از ظروف زمان چیزهایی که ظرف زمانی یعنی میتونه جمله مزاقه هم باشه نه و سلام و علا یوم ولد تو یوم و تو هر دو دویست و سلام و علامن. و سلام و علیه یومه بلیتون و, و سلامه و مبتده علیه جارمجرم متعلق به صابتون موجودون خبش و السلام علی. یومه زد متعلق به اون چه که علیه بهش متعلق از سلامه صابتون علیه یومه بلیت از اون روزی که به دنیا آمد در اون روزی که به دنیا یومه ظرف است و متعلق است به شبه ثابتونی که سلام نید علیه بهش متعلقه ولتو فعل تا نایفاید این جمله مضافان الهد و محلن مجروره اینگار گفته از علیه یومه ولادتی انگار گفته یومه ولادتی. <سطور> رو در حالا اگر یه عبارتی داشتیم که مثلا این پر بود حالا کاری نمونش نداریم که این نیست. این آیست رو بگذاریم بود و سلام و علا یوم علا. این نوع کلمات مثل یوم دیم. که اضافه میشن به سوی چی؟ جمله اضافه میشن به سوی جمله اگر اون در واقع احتیاج افتقاری آه نیست به جمله مضاف الیه خودشو پیدا میکن کنم مثلا رو گفتیم مبنی بر چی؟ واسه قاطعی که شواهد افتقاری داره به فرض افتقاری چی بود؟ یعنی شو احتیاج به جمله داره اونم اولا و ذاتی زاد... خوب هیثو اینطور بود ذاتا نیاز به جمله داشت اما یومه در اینجا ذاتا نیاز نداره ولی خب اگه جمله مذافن دی شد افتقار عرضی دارد افتقار چی داره عرضی بعضیها همین افتقار عرضی رو قبول کردن گفتن اگر مثلا حرف جهد اومد بگیم مبنی بر فرق میشه جنب بعضی ها گفتن نخیر چون افتقارش افتقار افتغ... عرزیست این م... مورب مبنیست بعضی افتقار عرزی رو قبول کردن مبنیش میکنن اگر جمله مزاقی نهیش بشه بعضی ها خیر. مبنیش نمی کنن. میگن مورب الان در این مثال یوم بولتون این آیا فتحه اعرابیه و منصوب الان یومه مثل سلید و جمعه یا فتحش فتحه بنایه و این اصم چیه محلن منصوبه و لفظه مبنی بر فتحه سلامه. این دو قوله یارتون چی گفتم یا نه یعنی الان که این این شده یومد آیا این بر برفت شده؟ یا نه منصوبه؟ به چه دلیل؟ به دلیلی که آیا شباهت افتقادی عرضی اثر میکنه که این بشه مبنی؟ یا اثر نمیکنه که بشه؟ مورد دوتا دوتا قول برد یه قول سومی این وسط هست قول سوم مورد قبول ماست و قولی که نهاد قبول دارن اون دوتا قول بود که مطلق بود یکی به طور مطلق گفت عرضی تأثیر دارد میشه مقلی یکی به طور مطلق گفت عرضی تأثیر ندارد میشه چی؟ مورد قول سوم میگه شباهت افتقالی مجوز برای مبنی شدن هست شباهت افتقالی مجوز نواجه کنند. را برای مبنی شدن بگید. هست ایه. حال حال اگر بعد از اون ظرف زمان اگر بعد از اون ظرف زمان فعل ماضی اومد یا فعل مزاره مبنی اومد فعل مزاره مبنی که یه؟ جمع موهندس اینجا جنبه بنا تقوییت پیدا میکنه و مضافه نلعی از مضافه خودش کسب به چی می‌کنه میکنه؟ بنا میکنه یعنی بنا رو هم میگیره اینجا مستحب به کچکارش کنید مبنیش کنه، خوبه کنه. یعنی مثلا باشه یوم تو، یا یوم مثلا فرض کنیم که یلدن نه چون ولی اگه غیر این دو جا بود غیر این دو جا مثلا مزافنه نهی فیر مزاره عادی بود یا جمله اسمیه بود مضافره در این صورت مستحف مقارب باشد چونچه این درده کننده افتقار زیاد قدید بهتره که چی باشه؟ ها؟ مثلا اگه بود یوم یل دو ما میگویدیم نوت این فرطه بس هش اعرابی ولی الان یوم میگیم چی؟ نوست دست وقتش چی چیه؟ بناییه مبنی بر بچه و محلن مبنی. چه چه گفتی؟ این همه تکرات چیم سه قل رو بگیرد ده وزکرو از انتم قلیلون وزکرو فیلو از اینجا درست ظرفه ولی مفهولون به یعنی زمانه اما مفهولون به مفهولون تیه نیست جمله اسمی است از میبینید اضافه شده به جمله از که خودش نبلیست به که شباهت لفظی داره و عربيه افتقاری اصلی هم داره اضافه میشه به جمله و از گروه فعل و فاعل اسم مقبولون ده و این مقبولون ببینید میگه کرو یاد بیاوری یاد بیاوری زمانی را که شما چی بودی دلیل بودی یاد بیاوری زمانی را که قبلا نه یاد بیاورید در زمان اگر اون زمان زمانی باشه که قلید بودیم ما مثلا پا سال پا سال باشه گذشته باشه اصلا وزکرون نمیتونه اون زمانش باشه مفعول و زمان فرد رو مشخص میکنه. وزکرون باید در آینده در حقوق پیدا کنه از نمیتونه اگر گذشته باشه چی بشه مفعول زمان این فلم ای از رضا به مفعولان فی کرو از انتون قلیه ولی الان آره ممکنه یک زمانی مفعولان فی باشه بیشترم مفعولان فی از, از مثلا اینطور بگم ذکر تو زیدن ذکر تو زیدن از جا ام زکرت رو زیدن. از جاعت ام یعنی چی؟ یعنی زید رو به یادم آوردن زکر کردم زید رو که زکر کرده؟ در وقتی که در وقتی که ام آمده. در اون هنگامی که این ام؟ هنون هنگام آمدن ام هنگام فعل ذکر رو میشه اما از انتم قلیلون هنگام آم ذکر کروم مفتولون و بعد از حیسو از ظروف مکان بعد از حیسو هم جمعه مضافه ندرد داریم سن از تدره جمعه من حیسو لا من, من حیسو لا یشورون آه؟ قرآن. من حیسو لا یحقسه ولا یضافه علال جمله علال جمل اضافه نمیشه به سوی جمل من ضروف مکان از ضروف هایی که برای مکان سوا ها خیره ها مگر اضافه نمیشه به سوی جمر از ضروف مکان مگر همین حیثو میگه غیر از این حیثو چیزی؟ میگه خب حالا اضافه میشه به سوی جمله چنین جمله ای؟ میگه ول اکثر و اضافته ها این ها خیلی یکه اضافه میشه به سوی جمله ای؟ من خوندن دیگه چند آیه رو خوندن سن از در جمه منحی صلا یعنه هون منحی صلا یشورون منحی صلا یحتسه و اینا همه دینید که جمعه فیده است اکثری جمعه فیده است ولی خب این اکثر دلیل نمیشه که بسیار جمعه اسمی رن اونم دلیل قریم تمام شد الخامس تو الباقه تو جوابن لشرتن جازبن مقرونتن به رفا او ازائل کجا میده او ازائل کجا جوابی که واقع شده باشه جواب برای عدات شرطی که جذب میده خب معلومه حتما دارید. اون فا داره چون فا که مابردش کشه محلن چیز؟ به یا مقرون به اضای خجاییت گفتیم که در یه جا هست که به جایی که فا رابط بشه چی رابط میشه؟ اضای خجایی اونم و محله ها هم خب معلومه محلشان جهز بودید چون الازی شرط جهاز این جزب. نه بود من یوزلل لاهو فلاها من من شرطیه مفعول یوزلل مقدم شده چون صدارت بودی چون منزون شده به فکر اتخان. دل الله این یوزل این ظاهریه ببینید با در جواب شهر که روشن باشه چون لا هدیالله لولا اسمش این جمله معناییه. این جمله محلن مجزومه دلیل بر اینکه محلن مجزومه اینه که دنباله آیا رو برید دیگاه کنید و یزر خون این درمی و یزر بازار دنباله شداره و یزر خون یعنی خدا یزر خون هم. یزر خون یعنی یزر خون تو همین کتاب خوندیم که اما تو مازی و در اول مازی یزر اول به یعنی تمام تاییده چون ماضی یدعو گزرا رو چون و بکوش بعد از رو استعمال نکرد به چه دلیل شما بگید این جمعه مجنونه چی باید بگید بگیم به این دلیل که عقب شده جمعه دیگری بود و اونجا پیاد شده چی؟ مجنونه این یکی و این توسف هم اتون به ما قدم از عیدیه اضافه هم یه همه هم بات دو نقطه ای که خیلش قنطه است بات دو نقطه که تو نمازم انجامتیم یعنی دعا قنطه دعا و کانت منر قانتی دعا کنندگان و تزرگاه کنندگان با های معلقه این با معلقه قلود. این به معنی ناومد. که است میگه است یعنی اگر به اینها برسد زده ایستن که سیه هایتون کمی از بددفید اونم میگه ما نیستیم که این سیه ها روش میگیم به،, به سبب این. به نتیم. به به قدمت و عیدی به خاطر آن چی کن؟ خودشون انجام دادم خودشون خودشون به ما قدمت یه بهشون بلا رسیده اونم به وسیله خودشون به جایی که دارم خودشون اصلاح کنن که آلت بلا و از خودشون دور کنن چیه اضافه هم یعنی کنون رو میکنن به کپیال گفتن و ناویدی از مهمتشون در صورتی که عیب او چیه در خودش عیبش در جاییه خدا و در اون رو خدا مخلوقاتش همه عرمتگردی هم نمیدید خودش خودش رو ایجاد حالا آره یه زرده بهشتده این کم که با کمترین زنگیه که خودش هم به خودش زده از تمامی رحمات خدا خب الان جمله هم که فعل و فاعل چی؟ و بایل. خبر و جمعه اسمی هم یعنطون این جمله چه مردی از اراف بره؟ جزب بلدیگه اینکه جواب شرط امراج میتونست به جای اضاف هم یعنطون چی بگه؟ بگه فهم یعنطون اون موقع دیگه ناگهانی فهمیده؟ نمیشه اون ناگهان ناومدی از اضافه نمیشه توسه پونت رو فیل شد پون یه پونت رو, شد. پونت رو جواب شد و جواب شد بعد از, از ازای بشه یکی برای خواهی سات یکی برای سات. و اما نه بود حالا یه نفر سوال می میگه ببین در مورد امتقوم عقوم امتقوم عقوم اگر بریستی می میگه اینجا جمعه تقوم عقوم مرد عراضی داری میگه خود فعل جمله عبارت است از فعل و فاعل فعل و فاعل این جمله معل نداره الا هم تقوم هم اعوم جمله چی ان مبتدا هم جمله شماست نه معل الهرابی نداره چرا چون جمله باید فعل شرط بشه جمله باید جزای شرط بشه معل الهرابی نداره در جای خودش اما اما خود فعل طعم فعل این جمله این جمعه چیه؟ مجزوم. چه در اینجا فعل در انتقام اینجا خود فعل مجزوم است و جمله محل اعرابی خود فعل است و جمله محل در انتقام تو اگر اینجا با جمله محله اعرابی بگیم نه غیر فعل سر جای خودش فعل واجبه جمله سر جای خودش جمله محله اعرابی نه فعلش باعث محله اعرابی باشه ولی چون فعلش ماضی محله اعرابی میشه چی یعنی اینجا نمیگیم جمله محلا مجزوم در قم در جمله محلا مجزوم در قم در واقع میگیم چی میگیم قمتر فعل و فائل جمعه فعل شد قمتر فعل و فائل جمعه جزای شد جمعه ها محل اعرابی ندارد بلکه فعل ما که فعل ما زید محلن فعل ما زید لفظا من جمع فلجزم و فیهل فعل وحده بود اما ظاهرن و اما جزم در این نوع به سالها برای خود فعل است بحثه نه فعل و فایدش در شمیده رو به تنهایی مجلومه حالا فعله به تنهایی مجلومه یا ظاهرن جزمشو میدونیم یا ظاهرن جزمشو نمیدونیم محلن مجلومه در مثاله از ساده ساده ششون عطابه عطل مفرده جمعه ای که مفرد شده باشه و محله ها به حسد بگی خب محله معلومه به حسد همون چی میشه؟ مفرده میشه اگه اون مفرد مرفوع باشه اینم میشه چی؟ طابعه بگی اون مفرد چی باشه؟ مجروب اینم مجروب مفرده به حسد همون و محله ها محله این جمعه به حسد اون مفرده. نه بگی ودتقو یومن ترجعون فیه الانو درست ودتقو چیه فرا هم یومان ظرف نیست نیجه وقتی ودتقو نشونه میده نمیده, نمیده داشته باشه در روزی که شما بر در که روز که همه نفتری هم زمان از همه این ودتقو یومن یعنی یعنی الان به ترسید ودتقو یومن به ترسید روزی را که برمیگردید پیشه یعنی الان تقوای اون روز رو اصلا بر به هدیت همون و از اینجا باشه ودتقو یومن به نفاهه یومن خب جمله بعد از خورجا اونتیه الاله ثبته یومن فاوید یکی جمله صفت نیاز به رابط داره فیره زمینش به ترسید روزی را که به تفصیل روزی را که خورجا اونتیه الاله درگردان نمیشه خودتون دلتون نمیخواد ترجعونه براتون میگردونه یکی کسانی دیگه هستن که حالتون میگردونه ترجعونه بیه فیلالله برمیگردید توی رامی و فیل میگه که طرفه ترجعونه فیل و ناقای بیه متعلق به ترجعون الالله این جمعه چه محلی از اعراب داره؟ ها؟ منتوبه حالا اگه اون بود که مثلا فیلیو اونه اونجا چی محل نه؟ مزید. اگر بود یومان تو شاد باز به حساب و نه بود حالا مثال. و نه اولا میگره او ایلت تاییره صاف و یقبز نه اولا میگره او باب باب که همدون چون صدارت که چیه؟ مقدم شده باب و علت متعلق است به اسم جمارون. آه تا یعنی پرندگان نه پرندگان حیرن عبابی عبابی بدلشون چه یا حتی چه اومده؟ جمع. دیگه اولا آیا اونها نگاه نکردن به سوی پرندگان به سوی اون مرغان مرغانی که کجا بودن؟ فوق هون بالای سرشون به چه شکل بالای سر اینها بودن؟ صاف، بال به شکلی که و غلی والله تعالی و يقبزنها جان از الان است برای برای و یقبزنه چی شده عطب شده به جای صافت اونجا سفت میتفاده اونجا چیه عطب بعد یقبزنه هم اون موقع جمعه چیه صافت میشه میشه حال انگاه گفته صافت و قابضات انگاه گفته صافت و قابضات این فوقه هم زرده زرد و جارمجروب بعد از مردم شه چی؟ بعد از نکرم شد بعد, بعد از مردم شه چی؟ به حال دیگه فوقه هم متعلق به یا آمل مقدر از برای چیه حال؟ از برای که در حالی که بالای سر اونها بود و در حالی که صد بسته و در حالی که حبس یک خب این و مخ که باشه گفتیم که میشه راحت کرد به جای شبه ولی اگه به جای اسم سریع کنیم حتما بچه للبت و عباعتم و تقرلت عمید. خب بریم سر هفته از ثابت از تابعت و لجملت ده ها محل جمله تابعت و جمله دیدی یا اون جمله محل اعرابی داره حالا ممکنه جمله قبل محلش رفت باشه مثلا خبر باشه ممکنه محلش نصد باشه یعنی مثلا مقبول بیه باشه مقبول قول باشی یه مکنه محلش جهر باشه موضاقه ها هر جمله محل را بیدهش بینه هم. و محله به حسبه ها محل این جمله دوپن به حسب جمله اول نوز زیدون قامه و قد عبود زیدون قامه زیدون مطده قامه خیلی پاید زنی پاید بشه خبر بشه باب باب آتفه قعده ابوهو فلو فایل قعده فل ابوهو فایل این جمله اد به جای قامه جمله قامه چه مردی از حراب داشت؟ مرخوب بود خبر بود؟ این هم میشه چی؟ مرخوب؟ حکم جمله رو دیگه میگه معتوف در حکم معتوف کنه همونطور که جمله قامه که خبره باید زمیر داشته باشه که برگرده به جنبه قهده هم باید زمیر داشته باشه که برگرده به زیدان زمیرش کدونه؟ عبون بود قامه و قهده عبون بلعت فعل از به شد اینکه شما قهد عبون رو عط کنید به چی؟ به سغرا به قامه. نه عطفش کنید به جای کل اگه عط بش اگر کنید به جای کل دیگه محل به عراضی یا جملهشو حال بگیدیم اگه حال بگیدیم چیه دیگه محل اعرابی دارد اما محل اعرابیش چیه نصفه از این مورد خوابه بلعتفل از سغرا که گفته به سغرا این که این جمله خب وطقه او با جمله بدل از جمله دیگه رام بگیم واقع و وتقاو بدلن. فرقش با حد بیان همین، حد بیان جمله از جمله نمیشه. اما بدل جمله از جمله چیه؟ وتقاو بدلن. البته به شرط کونه ها او فاریه تعدیه. تعدیه یعنی رساندن. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى یا عدی یا عدیانه یا مستش نوست تذکیر و تقه او بدلن و جمله بدل از جمله دیگه هم میاد اما به شرط اینکه که ها بودن این جمله دوبا او با رساتر وافیتر با وافیتر با باشد به رساندن مراد می‌تونه بگه او به یعنی مقتدرمن قرارداد رو نتونسته بیان کنه بعد الی عمرش چیکار کرده رو تمامش کرده نقد و عقول و لهو عقول وف زبیر عنه فارد لهو متعلق به عقول عقول و نه زمین را نخواهد لفن متعلق برد ارحل رحل یرحل رحل یمکی یرحلو کنید یرحلو کنید میگه بهش میگم که ارحل کوچ کند ما برو ارحل این کنید پیش ما ارحل الان معناش مشخصی بدل اجتمال مخاطب سره. یعنی به فهمی معنا. بدل اجتمال میگه معناش مشخص است، این شوق ایجاد میکنه برای شمیدن بدل. مثل یز علی اون که همه شهر الحرام ستال میگه اون صدا الان میگه عقول لهو الهر، من میگم برو. این برو دو تا معنا ممکنه بشه باشه. یکی یعنی برو میشه با وینس و ما از بلد یکی یعنی برو به خیر و سلام برسیم اینجا اگر باعثی آسیب بودیم تو مبهمه این برو از چه جهت برو از برو از این جهت که ما میخواییم یا از این جهت که نمیخوایم. این الان ارهن محل اعراوی هم داره محل اعراویش چیه؟ مغور باره, محفی باره. این لا تقیمنده این که نیاد دیگه معلوم میکنه که حتما مخور از این چیم شوق برای هم, شو بود. بود هم, بود. هم. لا لا یعنی هرگز اقامت تکیونت نتکیشون یعنی ما از اقامت نتوشن. نتوشن. ما هرگز اقامت این لاتوقیمنه این دنها این دنها متعلق به لا لاتوقیمنه که در فائده این جمعه هر آن بدل اجتمال از برای ارحل بدل اجتمال است از برای ارحل و محلن هم چیه محلن هم منصور و اللا. این و ادلای روش میگن چی؟ کرده لا و ادلای این چی؟ یعنی و ان لم ترحل و ان لم ترحل و اگر کوشش نمی‌کنی اگه از خوشی ما پوچ نمی خواهی بکنیم خواهی و انلا فکن چون فیده انشایی اومدی جواب شرک آشده فاقه بوده فکن فسر و جهر مسلمان فکن مسلمان فکن به زمیر انده اسمش مسلمان خواهی پس باش مسلمان فسر و جهر در پینهان و آشد پینهانه رو جده ترد یه اصلا در پیمانه در آشوکاره باش پیش ما هستی و این پیش او رو به سر جای سر چه حالا این بدل بدل اجتماع بود ممکنه که بدل بردار داشت مثلا احمد دکن به ما تعلمون امد دکن به ما تعلامون به انعام و بنی فرض کنی جمله اول محل اعرابی دارن مثلا قال امد اول یک یعنی کرد خدا شما رو به ما تعلمون. به که چیه میدونی آمون دیگه خیلی چیزا به ما تعلامون بعد تو مرحله دوم بدلش بدل برزه میگه امد ده کن به انعام و بنین و جمعنات و اون تون امداد شد ابداد کرد کدا شما رو به دبن... به انعام و بنین این چهار بایان رو کسران رو و جمعنات و اون و باها تو رو چشمان چهار شد تو چی بدلت؟ جمله دوم میشه بدل از ز و ممکنم هست بدل کل از کل باشه جمله دوم من کل جمله اوله همون معناس هیچ فرقی نداره فقط یمقدار چیه؟ واضح ا پس بنابر این اون که اینجا گفتیم گفتیم که جمله میتونه کنه بدل هست جمعه دیگه بیاد مثل عبود و نفره این حال لا تو و این لا با کنه دسته در جهبه مست تفصیل اون آخر تفسیر اولی ها تموم شد جملاتی که داشتند. حالا جملاتی که محل از اراب ندارن آخر یه تفسیر دیگه الگولا اولیش ممم الله محلدن جملاتی که محل معلذرا ندارم المستعنفه جمله مستنفه از جمله ای که آغاز شده بحیث. و هي المبتدا و حال کلامو جمله مستنفه جمله ای که کلام باهاش شده آغاز شده انا از نامو بیایدات انا از اینا که جملاتی که کلام باش آغاز میشه اینا جملات که معلق عرابی ندارن جملاتی اصلا علمو بها به ها ان آغاز شده است. ابتدا شده است. به ها با این جملات علم کلام ایه اول منقطعتو ها. یا جملاتی که از ماقفر خودشون چیه ها؟ مثلا سرپل باره هتر سرپل باره حتی ادخلوها الانه حتی ادخلوها الانه یعنی سر جدن حتی ادخلوها تا اینکه که داخل بشن به مدینه الان به این شرم الان این چرا جمعه از خودها الان جمعه مستعنف است منقطه از ما قبل شد دیدن که حتی حتی استینافی هست. چرا حتی حتی استینافی شد آن این که مرکومتی ما مرکومتی چرا مرکومتی و اما قبل جلسه